18ام رو دقیقا تعیین کنید. تعیین تقدم به گوشتون خورده. تقدم کارهاییه که بیشتر و سریعتر انجام میدید. از طرف دیگه تأخر چیزیه که اگه هم انجام بدید کمتر و دیرتر انجام میدید. واقعیت اینه که شما همین حالا هم دارید زیر کارهای بیش از حد و زمان ناکافی له میشید. برای اینکه یک کار جدید یا متفاوت بکنید، باید یک کار که الان انجام میدید رو متوقف کنید. برای اینکه یه کار جدید یا متفاوت بکنید باید شروع کنید به تعیین کردن حساب شده تخر در اون کاراتون که دیگه به اندازه سایر کارها اهمیت ندارن. چیزی رو که پیتر دراکر ره کردن خلاق نامیده به کار بگیرید. چیزی که در مورد کارها و فعالیت که دیگه به اندازه وقتی که شروع به انجامش کردید ارزش نداره انجام میشه. واقعیت اینه که همین حال هم کارهایی بیش از حد زیادی برای انجام دارید. پس قبل از اینکه چیز جدیدی رو شروع کنید، باید یک کار قبلی رو متوقف کنید. در برداشتن یک کار جدید نیازمند زمین گذاشتن یک کار قبلیه. ورود به منی خروجه، شروع کردن به معنای پایان دادنه. به زندگی و کارتون نگاه کنید. از انجام چه جور کارایی باید دست بکشید تا بتونید به اندازه کافی زمان خالی کنید تا بیشتر کارهایی را انجام بدید که باید وقت بیشتری براشون بذارید؟ واقعیت اینه که فقط تا اون حدی که فعالیت‌های کم ارزشتون رو متوقف می‌کنید، میتونید زندگیتون رو تحت کنترل داشته باشید. فقط وقتی میتونید کاراییتون رو دو برابر کنید که برای انجام چیزهایی که میتونید در آینده براتون بازده قابل ملاحظه‌ای داشته باشن، زمان خالی کنید. وقتی بیش از حد ظرفیتم کار بر سرم میریزه شعاری دارم که همیشه برای خودم تکرار می‌کنم. بیشترین حد کاری که می‌تونم انجام بدم همینه. شما هر وقت به هر دلیل حس کردید که بیشتر از حد ظرفیتتون کار بر سرتون ریخته و هر وقت حس کردید برای کار بیش از حد زمان کافی ندارید مکس کنید، یک نفس عمیق بکشید و به خودتون بگید بیشترین حد کاری که میتونم انجام بدم همینه. بعد بنشینید کارهایی رو که باید انجام بدید رو فهرست کنید و شروع کنید به تعیین کردن تأخر برای زمانتون. بعضی وقتها کلمه بزرگترین وقت اندوز باشه.